دوازده 2008 سرانجام تمامش کرده بود به آخر ملت عشق رسیده بود هم کتاب را خوانده بود هم گزارشش را کامل کرده بود الا با آنکه خیلی دلش می‌خواست نظراتش درباره رمان را با عزیز در میان بگذارد با این فکر که کاری است جلوه خودش را گرفته بود. کار و عشق نباید با هم قاطی می ابتدا باید کاری را که به او سپرده بودن تمام می کرد. به عزیز حتی نگفته بود توی کتاب فروشی هرچه درباره مولوی پیدا کرده، خریده و شبها پیش از خواب چند صفحه مصنوی می خانند. با وسواس زیاد روابطش با نویسنده را از کارش در مورد رمان جدا کرده بود. اما آنچه در دوازدهم ژئن جوان رخ داد، مرزی را که میان کار و عشق کشیده بود، از میان برد. الا روبینشتاین تا آن روز نمیدانست عزیز چه شکلی است. چطور ممکن بود بداند؟ عکسی از او ندیده بود. عزیز در سایت اینترنتیش در میان عکس که انداخته بود عکس خودش را نگذاشته بود. راستش الا اوایل لذتی جداگانه میبرد از اینکه نمیدانست کسی که با او نام نگاری می کند چه شکلیست تیپش ظاهرش مهم نبود. نه دلش خواسته بود عکس عزیز را ببیند، نه نیازی به این دیده بود که عکس خودش را برای او بفرستد. این طوری بهتر بود، اسرار آمیزتر بود، اما رفته رفته کنجکاوی او غلبه کرد. میخواست چهره نویسنده نامه را ببیند. به نظرش هم عجیب می آمد که عزیز از او عکس نخواسته. در این دوره و زمانه توی دنیایی که همه چیز تصویر محور است، مگر ممکن است آدم با کسی که نمی‌داند چه تیپیس دوستی کند؟ صمیمی شدن که اصلاً حرفش را هم نزن. سرانجام الا تصمیمی ناگهانی گرفت. و یکی از عکسهای های را برای عزیز فرستاد. در عکس توی آلاچیق نشسته بود، کنارش هم سایه دوست داشتنی، پیراهنی صورتی با پارچه ظریف هم تنش بود. لبخندی بلب داشت با حالتی نیم شاد و نیم غمگین با انگشتهایش تسمه قلاده‌ی سگ را محکم گرفته بود طوری که انگار از او نیرو می‌گیرد آسمان بالای سرشان مانند بقچه‌ی چهل تکه پهن بود تکه‌های خاکستری کبود سرخ از آن اکس هایی نبود که خیلی دوستشان دارد اما حال و هوایی عرفانی داشت یا اینکه دستکم خودش اینطور طور فکر می کرد. عکس را به ایمیل پیوست کرد و فرستاد اینطوری به یک معنا از عزیز هم میخواست عکس خودش را بفرستد خیلی طول نکشید که آن عکس رسید و آن هنگام بود که الا اولین بار دید عزیز زهرا چه شکلیست. به نظر می رسید عکس را جایی در خاور دور انداختهاند توی کادر عکس بیشتر از یک دوجین بچه بود همه موسیاه چشم بادامی قد و قد. و عزیز در میانشان ایستاده بود پیراهن کتانی سیاه و بلندی بتن و شلواری سیاه به پا داشت. بینیش باریک و بلند بود خطوط چهرش خشن بود اما در این حال حالتی ملایم و مهربان داشت استخان گونهش برجسته و پیشانیش بلند بود موهای بلند و سیاهش روی شانههایش ریخته بود چشمان سبز رنگش حالتی آرام داشت. هاکی از اعتماد به نفسی عمیق. گوش راستش گوشواره داشت. گردن آویزی به شکل خورشید نیز از گردنش آویزان بود. در زمینه عکس دریاچه‌ای نقرهای مثل آینه میدرخشید. و سایه یکی که وارد کادر عکس نشده بود، شاید هم آنجا نبود، گوشه پایینه عکس افتاده بود. الا همانطور که داشت همه جزئیات مرد توی عکس را به خاطر می‌سپرد، حس کرد قبلا او را جایی دیده. خیلی عجیب بود، اما انگار پیش از این با هم آشنا شده بودند. یک دفعه متوجه قضیه شد و فهمید او به نظرش شبیه چه کسی رسیده. پس چی عزیز زهارا به شکل حیرت انگیزی شمس تبریزی را به یادش می آورد. عزیز اینن همان شکلی بود که شمس در رمان پیش از رفتن به قونیه برای آشنایی با مولانا تصویر شده بود. دستکم کم به لحاظ ظاهر الا خیلی کنجکاف شده بود عزیز ظاهرا شخصیت اصلی کتابش را دانسته به خودش شبیه کرده بود ممکن بود همانطور که خدا انسان را به حیعت خودش آفریده عزیز هم که نویسنده است خواسته باشد قهرمان رمانش را به شکل خودش بیافریند اما احتمال دیگری هم بود. شاید شمس تبریزی واقعی هم همان طور بوده که در رمان توصیف می شود. در این صورت شباهت دو مرد که با فاصله هشتصد سال به دنیا آمده اند خیلی حیرت آور می شد. این شباهت ظاهری فارغ از علم یا اراده نویسنده به وجود آمده بود الا همانطور که به حل این معما فکر می کرد با خود گفت شاید میان شمس تبریزی و عزیز زهارا نزدیکی فراتر از نوعی بازی ساده ادبی وجود داشته باشد شباحتی که کشف کرده بود دو تأثیر غیرمنتظره داشت یکی این که تصمیم گرفت ملت عشق را دوباره بخواند و این بار نه فقط از زاویه داستانی بلکه از منظری دیگر برای پیدا کردن عزیزی که در شمس تبریزی پنهان شده برای یافتن ای که در قهرمان داستانش مخفی شده دوم این که شخصیت عزیز توجهش را بیشتر جلب کرد چه بود این عزیز؟ سرگذشتش چگونه بود؟ قبلا در یکی از ایمیل هایش نوشته بود اسکاتلندی است؟ در این صورت چرا اسمی شرقی و اسلامی داشت؟ چرا از نام عزیز استفاده می کرد؟ اسم واقعیش چیست؟ زهرا معنایی دارد. همه اینها یک طرف صوفی یعنی چه؟ تصوف چگونه است؟ یک چیز دیگر هم بود که ذهنش را مشغول می کرد. آرزو از آخرین باری که حس کرده بود زن است و آرزو کرده بود مردی کنارش باشد زمانی آنقدر طولانی گذشته بود که حتی فراموش کرده بود این احساس چگونه است شاید به همین دلیل برای رو در رو شدن با خودش این همه تأخیر کرده بود اما الان واقعیت درست روبرویش ایستاده بود نیروی جاذبه‌ای قوی تحریک کننده و گریزان از قواعد الا هرچه بیشتر به مرد توی عکس نگاه میکرد، بیشتر آرزو میکرد کنارش باشد این آرزو چنان غیرمنتظره و دلهور آور بود که سریع لبتابش را بست از آشپسخانه دور شد، انگار اگر این کار را نمیکرد، مرد توی عکس به زندگیش رخنه میکرد یا بدتر از آن دستش را میگرفت و به داخل عکس میکشیدش